در ازل هر کوب فیض دولت ارزانی بود تا ابد جام مرادش همدم جانی بود من همان ساعت که از می خواستم شد توب کار گفتم این شاخرد باری پشیمانی بود خود گرفتم کفکنم سجاده چون سوسن به دوش همچه گل بر خرق رنگ می مسلمانی بود بی چراغ جام در خلوت نمی آرم نشست زان که اهل دل باید که نورانی بود هممت عالی طلب جام مرسع گومه باش. رند را آب انب یا غوت رومانی بود گرچه بی سامان نمایت کار ما سهلش مبین کن در این کشور گدایی رشک سلطانی بود نیخنامی خواهی ای دل با بدان صحبت مدار خودپسندی جان من برهان نادانی بود مجلس انس و بحار و بحث شعرن درمیان نستدن جامعه می از جانان گرانجانی جانی بود ای عزیزی گفت حافظ می‌خورد پنهان شراب ای عزیزم نه ایوان به چه پنهانی بوب